باقی مطلب رو از زبان استاد توس بشنویم. به شبگیر شبگیر این صبح خیلی زود وقتی که هنوز هوا روشن نشده به شبگیر هنگام بانگ خروس در درگاه برخاست آقای کوس چو پیلی به اسپندر آورد پا بیاورد چون باد لشکر جا. همی رفت تا پیشش آمد دو راه ماند بر جای کیلو سپاه ایستادن که ببینن از کدوم راه برن دژ گنبدان بود راهش یکی دگرسوی زابل کشیدندکی در راه یکی میرفت به گنبدان دژ یعنی همون جایی که اسفندیار در, در بند بود به یه راه دیگه میرفت به زابل سر در راهی که رسیدن شطور آنکه در پیش بودش بخفت تو گفتی که گشته است با خاک جفت شطر پیش بلند نشد همین چوب زد بر سرش تاروان زرفتن بموندان زمان کاروان جهانجوی را آن بد آمد به فال بفرمود که سر ورند و یال این کار رو اسفندیار به فال بد گرفت و فال بد هم بود شطر حاضر نمیشد بره به قتلگاه اسفندیار ولی به جای از راه برگرده دستور داد چطور رو سر ببرند تا اگر بدی هست به خود شطور برگرده و اسفندیار گرفتاری پیدا نکنه جهانجوی را آن بد آمد به فال که سر ببرند و یال بدان تا به دو بازگردد بدی نباشد به جز فره ایزدی بریدند پرخاشجویان سرش به دو بازگشتان زمان اخترش کمی گشتان اشطور اسفندیار گرفت آن زمان اخترشوم خار میگه بازم اخترشوم رو خار گرفت چنین گفت کان کس که پیروز گشت سر بخت او گیتی افروز گشت نیک هر دو یزدان بود لب مرد باید که خندان بود و از آنجا بی آمد سوی هیرمند همین بود ترسان زبین مگزند برای این ببستند پردهسرای، بزرگان لشکر، گزیدند جا جال به بزد دود و بنها تخت, تخت بر آن تخت برشد گو نیک بعد میاورد و رامشگران را بخاند بسی زر و گوهر بر ایشان پشاند فردوسی اینجا شرح حوادث سفر رو دیگه نمیگه به غیر از همین کشته شدن شطور و میگه که استندیار آمد تا لب هیرمند هیرمند مرز زابولستانه و جایگاه رستم از اونجا شروع میشه اونجا که آخرین مرحله مقصد بود سرآپردهای زد و تختی گذاشت و نشست و رامشگران رو خواند برایینکه عیش اش و اشرتی بکنه و این سفر رو که از اولش با تلخی و غم و اندوه و فال بد همراه بوده یه قدری این تلخیها رو از دل خودش ببره برامش دل خویشتن چاد کرد دل رادمردان پر از یاد کرد چگل بشکفید از می سال خرد روخ نامداران و شاه نبر به یاران چنین گفت که از رای شاه نپیچیدم و دور گشتم زراه مرا گفت برکار رستم بسیج ز بند و ز خاری میا سادیج بکردم برفتم برای پدر کنون این گزین پیر پرخاش خر بسی رنج دارد به جای سران جهان راست کرده به گرز گران همه شهر ایران به دو زنده ان. اگر شهری آرند و گر باز این نظر باطنی اسپندیاره میگوید من به رأی پدرم آمدم ولی این پیرمرد زحمت بسیار کشیده تمام ایران رو به گرزش راست کرده همه مردم در نتیجه زحمات او زنده خب این رو ولی آمده دست چه ببنده؟ بنابراین به پاس این خدمات باید یه فرستاده باهوش خیلی سخنگوی بره که رستم راضی کنه که با من بیام. ترستاده باید یکی تیزویر تیزویر یعنی تیزخوش ترستاده باید یکی تیزویر سخنگوی و داننده و یادگیر. سواری که باشد برای فر و برای نگیرد برا رستم اندر فرید گریدون که آید به نزدیک ما درفشان کند رای تاریک ما به خوبی دهد دست بند مرا به دانش ببندد گزنده مرا نخواهم منو او را به جز نیکویی اگر دور دارد سر از بدخویی پشوتن به دو گفت این است را بر این باش و آزرم مردان بخوا پشوتن برادر اسفندیار او هم نظر کرده زردشته زردشت به اسفندیار پهلوانی داده در روایت‌های زرداشتی گفته شده است که زردوش دستور داد تا اورو ببرند و در چشمه‌ای غسل بدن که او رو بشه و اسفندیار وقتی که او در آب پرو کردن چشمش رو بسته بود و در نتیجه همه جای بدنش رو شد ولی چشمش رو نشد. و از همونجا هم همون نقطه آسیب بود که رستم تیرش رو میفرسته. اینجا من یه بحثی ناچار باید بکنم و بعد هم در ضمن مسائل توجه دوستان رو به جلب کنم کرد او این است که فردوسی فکر می کرده که این تاریخ ایران است که او داره می نویسه و در نتیجه این حوادث همه یک یک اتفاق افتاده بعد به عقلش جور در نمی آمده که یک کسی با گوشت و پوست و استخان وجود داشته باشه و پیکان فولاد یا سنان نیزه به تنش فرو نره اصلا کار نکنه به نظر فردوسی این کار معقول نمی آمده. اگر صحبت رو این بفرمایید رو این رو به صورت مجازی به کار می بردن به معنی آسیب ناپذیر شکست ناپذیر همون که مثلا برای مرحوم تختی میگفتن پهلوان شکست ناپذیر بالاخره یه روزی شکست میخورد از دست روزگارم شکست خورد روئین تنم که میگویند هم اون معنی نه به این معنی که سر نیزه رو میخوان فرو کنن به تن او و چنان باشه که میخوان فرو کنن به سنگ خارا این به نظر فردوسی چون معقول نمی آمده در طی این داستان سعی میکنه که به یه نحوی از این ماجرا خودشو دور نگه بداره و نسبت روئین تنی به اسفندیار رو تأیید نکنه اگر جایی مجبور میشه لقب و صفت رو این تن رو برای اسفندیار به کار ببره از قول کس دیگه به کار ببره و همه این ماجراها برای این بوده که عرض کردن فکر میکرده تاریخ رو میسازه و این مطلب معقولی نیست بنابراین فکر این بودی که اگر از او پرسیدن یا به او ایراد گرفتن تو گفتی اسفندیار رو این تنه مگه میشه همچی چیزی بگوید که نه من نگفتن حتی یک جا به صورت ریشخند هم بعد از اینکه تیر رو میزنه به چشم او میگه تو آنی که گفتی که رو این تنم بلند آسمان برزمین برزنم به یک تیر برگشتی از کارزار ملازم میفرمین؟ یعنی یک جا هم که خود فردوسی از زبان رستم اسفندیار رو این تن میخانه درست در بیتی است که میخواد این مطلب رو انکار بکنه نه اینکه تایید بکنه حالا جاهای دیگرم میبینیم می‌بینیم که لفظ رو اینتن آمده بعدم هم جنگ رستم و اسفندیار رو خواهیم دید در اون جاها که اینا چجور جنگ کردن با هم هیچ جان از گفته فردوسی بر نمی آید که رستم مثلا تیری انداخت به اسفندیار و این تیر اصلا برگشت هیچ جور فرو نرفت به تن او خیر به صورتی سعی میکنه که از کنار این بگذره که میگه دوستم تیر ولی تیرش پاستر نبود به او یا مثلا یه, جای، یه جوشنی پوشیده بود که سلاح او کار نمیکرد مطالب رو به این ترتیب توجیه میکنه برای اینکه یه حرف نامعقولی رو نزنه اما این حرف نامعقول به صورت معجزه در روایتهای دینی زردشتی وجود داره زردشت گفتن او رو نظر کرد و در روایتهای مذهبی میگن روینتن شد شهرت روینتنی هم برای اسفندیار هست در حال مورد تایید زردشت بود مورد دعای زردشت بود پهلوان بود به بالاترین درجه پهلوان شکست نپذیر بود همه اینها درسته اما در شاهنامه ما دلیل محکمی و بیتی که و به طور واضح این صفت رو از زبان فردوسی یا از زبان رستم برای اسفندیار به کار برده باشه و مقصودش این باشه که این سلاح شمشیر مثلا میزدن به تن او و نمیبرید برید این چیزی رو نمی بینیم بنده این نکته رو قبلا و عرض برسونم که وقتی آمد این مسائل ذهن دوستان ما همه آگاه باشه و متوجه این مطلب باشه که فردوسی این نکته رو در نظر داشت در مورد دو تن دیگر هم زردوش دعا کرد یکی درباره باره پشوتن برادر اسفندیاره که همراه اوست و پشوتن دانا و خردمند در نتیجه دعای زردوش پشوتن مرد خردمندی شد و میبینیم که چند بار و در چند جا در طی داستان برادرش رو سعی میکنه که باز داره از تصمیم ناب که میخواد بگیره ولی البته گوش اسفندیار به نیست و همچنان مستقیم به طرف سرنوشت خودش میره یکی دیگر هم جاماست به که دیدیم اون دانشی رو داشت که میتونست سرنوشت هر کسی رو پیش بینی بکنه و یه بار پیش از داستان رستم و اسفندیار در جنگ زریر و ارجاس پیش بینی کرده بود که تمام پسرای گشتاس به از اسفندیار و برادرش زریر همه کشته خواهند شد و گشتاس اونجا خیلی قصه خورد یه بار دیگر هم سرنوشت اسفندیار رو پیش بینی کرد و این جاماس هم این دانش رو در نتیجه دعای زردوش به دست آورد. به هر حال میگوید که اگر رستم بیاد و دست به بند من بده، البته اگر به قول مولانا گفت اما در اگر نتوان نشاست. گفت اگر دست به بند من بده من هرگز به اون سخن سعد نخواهم گفت، با اون مهربانی خواهم کرد. پشوتان هم به او گفت بله، راه درست همین. من این بکی دوباره تو باز میخونم. گرید که آید به نزدیک ما درفشان کند رای تاریک ما به خوبی دهد دست بند مرا به دانش ببندد گزند مرا نخواهم من او را به جز نیکویی اگر دور دارد سر از بدخویی پشوتن به دو گفت این است راه بر این باش و آزرم مردان بخواه یعنی از پهلوانان شرم داشته باش و آزرم رو در برابر اونها حفظ کن بعد پسر بزرگش بهمن رو به عنوان سخنگو به عنوان سفیر و به عنوان فرستاده انتخاب میکنه و دستوراتی به اون میده یه مقدار دستورات در مورد سروز و لباس و مرکب بهمن است و این ترتیبات یه مقدار دستورات هم در مورد پیغامی است که بهمن حامل اون پیغام دست برستند این مطالب رو هم باز از زبان استاد توس می‌شنویم بفرمود تا بهمن آمد پیش برا پندها داد زنداز بیچ بدو گفت اسب سیاه برنشین بیا رایتن تن را به دیبای چین دیبا لباس ابریشمی کلوپ بوده لباس فاقر در حقیقت بدو گفت اسب سیه برنشین بیا رایتن تن را به دیبای چین به نه بر سرت افسر خسروی نگارش همه گوهر پهلوی بر آنسان که هرکس که بیند تو راز گردن کشان برگزیند تو را بداند که هستی تو خسرو نژاد کند آفریننده را بر تو یاد ببر پنج بالای زرین ستام سرفراز ده موبد نیکنا هم از راه تا خان رستم بران مکن کار بر برگران گران اینجا همراهان بهمن رو یاد می‌کنه میگه 5 تا پهلوان با اسبای خوب ببر خودت هم وضعیت رو مرتب کن ده تانم از موبدان برای اینکه اگر مشورتی چیزی لازم بود با اونها بکنه در مورد گزاردن پیغام با اینا برو و کار رو هم بر خودت گران مکن بعد پیغام رو میده یعنی میگوید که حالا وقت گرفتی اینا رو بگو دروغ داشته از ما و خوبی نمازی بیارای رای گفتار و چربی فضای چربی است که الانم میگیم فلان کس زبون چرب و نرم داره داشته از ما و خوبی نمای بیا رای گفتار و چربی فضای بگویش که هرکس که گردت بلند جهاندار و از هر بدی میگزند باید که دارد سپاس که اویست جابید بید نیکی شناس چو باشد فضاینده نیکویی به پرهیز دارد سر از بدخویی بی کامگاری و گنج بود شادمان در سراغست پنج چود دوری گذیند ذکر دارد زشت بیابد به دانگیتی اندر بهشت بدونیک بر ما همی بگذرد چنین داندان کس که دارد خیرد سرانجام بستر بود تیر خاک بپرد روان سوی یزدان پاک بگیتی هر آن کس که نیکی شناخ بکوشید و با شهریاران بسافت ملاحظه می‌فهمید که اون قسمت اول مقدمه است که هر کسی باید کار خوب بکنه اگر کسی کار خوب بکنه جزای خوب می‌بینه اون دنیا در بهشت میره سرانجام ما بستر خاکه باید بریم پیش خدا می‌ریم اینا همه مقدمه است برای اینکه او رو تشویق بکنه به اینکه امر پادشاه که آمده اطاعت بکنه و بیاد بعد از این مقدمه مطلبش رو میده. میفرماید که بگیتی هران کس که نیکی شناخت بکوشید و با شهریاران بساخت همان برکه کاری همان بدروی سخن هرچگویی همان بشنوی کنون از تو اندازه گیریم راست نباید بر این فزون و, و نکاست که بگذاشتی سالیان بیشمار بگیتی گیتی بدیدی بسی شهریار اگر بازجویی راه خرد بدانی که چونین نه اندر خورد که چندین بزرگی و گنج و سپاه گران مای اسپان و تخت و کلاه ز پیش نیاکان ما یافتی چو در بندگی تیز بشتافتی چه مایه جهان داشت له راست نکردی گذر سوی آن بارگاه تو او شهر ایران به گشت تاست داد نیامد تو تراهیس تخت یاد سوی او یکی نامه ننوشده ای از آرایش بندگی گشده ای نرفتی به درگاه او بندوار نخواهی بگیتی کسی شهریار زهوشنگ و جم و فریدون گرد که از تخم زهاک شاهی ببرد همی رو چنین تا سر کیق که تاج فریدون به سر برنهاد چو گشتاست شهن نیست یک نامدار به رزم و به بزم و به رای و شکار پذیرفت پاکیز دین بهی نهان گشت گمراهی و بیرهی چو خورشید شد راه گیهان خدیب نهان شد بدآموزی و راه دیب از آن پس که ارجاس آمد به جنگ سپه چون پلنگان و مهتر نهنگ ندانست کس لشکرش را شمار پذیره شدش نامور شهریار یکی گورستان کرد بر دشت کین که پیدا نبود پهن روی زمین همانا که تا خیز این سخن میان بزرگان نگردد کنند کنون خاور او راست تا باختر همی بشکند پشت شیران نر زد توران زمین تا در هند و روم جهان شد مرورا چو یک مهره مون زدشت زد سواران نیزه گذار به درگاه اوین چندی سوار فرستندش از مرزها باج و ساب که با جنگ او نیست شان زور و تاب از آن گفتم این با تو ای پهلوان که او از تو آزرده دارد روان نرفتی به نام بر بارگاه نکردی به نام داران نگاه گرانی گرفت در جهان که داری همی خویشتن را نهان فراموش تو را مهتران چون کنند، مگر مغز و دل پاک بیرون کنند. همیشه همه نیکویی خواستی به فرمان شاهان بیا راستی اگر بر شما کسی رنج تو بگیتی پزون آید از گنج تو ز شاهان کسی بر چنین داستان ز بنده نبودن هم داستان مرا گفت رستم ز بس خواسته هم از کشور و گنج آراسته به زاول نشسته است و گشته است مست نگیرد کس از مست چیزی به دست یک روز و سوگند خرد به روز سپید و شب لاژورد که او را به جز بسته در بارگاه نبیند از این پس جهاندار شاه اینجا اگر توجه فرموده باشید به گفتار اسفندیار یه مقداری به نعل میزنه و یه مقداری به میخ میزنه و یه مقداری میگوید که تو هرگز جز نیکویی نکردی و بعد یه مقداری میگه که ناخدمتی کردی و در دوران لحراس و گشتاس اصلا نیامدی و نامهی هم ننوشتی و بعد یه مقداری از جا و جلال گوشتاس باز میگه که از میونه پادشاهانیکیان هیچ کس به قدرت او نیست و همه دارن باج صاب به او باز دوباره میره سراغ و مطلب که تو با این همه نیامدی و من حالا بگم که در اثر این رفتار تو روان پادشاه از تو آزرده است در نتیجه یک روز سوگند خورد که تو رو جز بسته در بارگاه خودش نبینه من هم به این منظور آمدم که فرمان پادشاه رو اجرا بکنم و بعد باز دوباره شروع میکنه زدن به میخ و مدارا کردن که اگر تو بیای من چنین میکنم من چنان میکنم من نمیذارم باد سر بر تو به من جلو این کار میگیرم سراسر پیغام یه مقداری بیمه و یه مقداری امید به هر حال رسیده بود این تا اونجا که میگه گوشت تو که تو رو جز بسته در بارگاه نبینه بعد فردوسی این فرمایت که کنون من از ایران به دین آمدم نبود شاه دستور تا دم زدم به پیچان شو از خشم اوی ندیدی که خشم آورد چشم اوی چو اینجا بیایی و فرمان کنی روان را به پوزش گروگان کنی به خورشید رخشان و جان زریر به جان پدرم آن جهاندار شیر که من زین پشیمان کنم شاه را برف رو زمین اختر و ماه را که من زین که گفتم نجویم پرو نگردم به هر کار گرد دروغ پشوتن بر این برگ گوای من است روان و خیرت من است همی جستم از تو من آرام شاه ولیکن همی از تو دیدم گناه پدر شهریار است و من کهترم ز فرمان او یک زمان نگذرم همه دوده اکنون بباید نشست زدن رای و سودن به کار دست زواره فرامرز و دستان سام جهان دیده رودابه نیکنام همه پنده من یک به یک بشنوید به دین خوب گفتار من بگروید نباید که این خانه ویران شود نباید اینجا یعنی مبادا نباید که این خانه ویران شود به کام دلیران ایران شود چو بسته تو را نزد شاها برم این جان کلام چو بسته تو را نزد شاها برم به دوبر فراوان گناها برم بباشیم پیشش به خواهش به پای سه خشموزکین آرمش باز جای نمانم که بادی به تو بروزد. برامسان که از گوهر من سزر اگر دست به بند من بدی و بیای همراه من من اونجا که رفتم به پا میستم به خواهشگری از برای تو تا وقتی که خشم او رو از بین ببرم و او رو بیارم سر جای اولش و من نخواهم گذاشت همونجوری که ذات من و گوهر من سزاوار اوست نمیگذارم که باد سرد بر تو ببه. بعد هم آخر پیغام که ملاحظه فرمودید میگه که شما خانوادهتون زواره، فرامرز، زال، رودابه بشینین و در این مورد شعور کنین اگر تو بیای چنین چنان بشین. این پیغام اسفندیار است که میده به بهمن و میگه بهمن این پیغام رو ببرید بهمن البته به راه میفته اما باز حوادث دیگری در راهه که بسیار جالب توجهه یعنی به این سادگی پیغام به رستم نمیرسیم آن نام بر پیشگاه چون بشنید بهمن بی آمد به راه بپوشید زربفت شاهنشهی به سر برنهادان کلاه مهی خورامان بی آمد سرای درفشی درفشان پس او بپای جهانجوی بگذشت بر هیرمند، جوانی سرفراز و عصبی بلند همان در زمان دیدبانش بدید سوی زاغلستان فقان برکشید که آمد نبرده سواری دلیر به هر رای زرین سیاهی به زیر اینجا اولاً یه مطلب جالب توجه او این است که دیدبان داشتن و مدام یعنی 24 ساعت یه کسی اونجا مشغول دیدبانی بوده در جایی که خبر بده به شهر که کسی آمده یا کسی رسیده که هر طور میدونن باش رفتار کنن اگر دشمن سپاه تقییه کنن اگر دوست استقبالش بیان الان هم همینطور میشه وقتی که بهمن میاد میگه دیدبان اون رو دید، سیاهی وزیر داره یعنی اسب سیاه سواره چنان که قبلن اسفندیار گفته بود پشت سرشم چند تن سوار بیشتر نیست همان در زمان دیده بانش بدید سوی زاولستان فقان برکشید که آمد نبرد سواری دلیر بر رای زرین سیاهی وزیر پس پشت او خارمای سوار تناسان گذشت از لب جوی بار همان در زمان زال زرب برنشست یعنی سوار ازبشد کمندی به فتراک و گرزی دست بیامد ز دیده مرو را بدید دیده اینجا یعنی همون پست دیده بانی بیامد ز دیده مرو را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید چنین گفت که نام بر پهلو است سرافراز با جامعه خسرو است زلوه راست دارد همانا نژاد پی او بر این بوم فرخنده باد همان در زمان بهمن آمد پدید از او رایت خسروی گسترید ندانست مرد جوان زال را بیافراخت آن خسروی یال را چون از دیک ترگشت آواز داد به دو گفت که مرد ده نژاد سر انجمن پور دستان یعنی رستم سر انجمن پور دستان کجاست که دارد زمانه به دو پشت راست که آمد به زابل گوسفندیار سراپرده زد بر لب رو بار به دو گفت زال پسر کام جوی فرود و می خواه و آرام جوی کنون رستم آیت ز نخچیرگاه زواره فرامرز و چندی سپاه تو با این سواران به باشر بیا دل را به بگماز چند بگماز یعنی جام شراب و خود شراب تو با این سواران به باشر بیا رای دل را به بگماز چند چنین داد پاسخ که استندیار نفرمودمان رامش و میگسار گذین کن یکی مرد جویند راه که با من بیاید به نخچیگاه گفت اسفندیار دستور نداده که ما رامش و میگساری بکنیم این است که شما یه راهنمایی بفرستید که من برم در محفیلگاه رستم و پیر.